افسونه افسانه افسانه ها حکایت ها و داستان های شیرین و دلنشینی که نسل به نسل و سینه به سینه روایت شدند تا به دست ما رسیدند داستان هایی که در دل هر کدومشون پند و اندرز و آموزه‌ای برای زندگی نهفته است افسانه های هر سرزمین بخشی از میراث فرهنگی اون سرزمین محسوب میشن که نشان از آین ها و فرهنگ های بومی و ملی اون سرزمین هستند قرار براتون روایت کنیم دافنه نام داره سروده ای از شاعر رومی پوپلیوس اوویدیوس ناسو ولی بعد نیست قبل از روایت این افسانه با پوپلیوس اوویدیوس ناسو بیشتر آشنا بشیم اولیوس اویدیوس ناسو مشهور به اووید در 20 مارس 43 سال پیش از میلاد در شهر سلمو در شرق روم متولد شد اووید شاعر رومی بود که شعرهای عاشقانه و آسورهی می سرود. پدرش او را برای تحصیل حقوق به روم فرستاد، اما با خبر شد که پسرش شاعر شده پدر او را سخت نکوهش کرد و از فرجام شومی که هومر شاعر یونانی داشت ترساند. ولی اوید شیفته ادبیات بود و تن به کار غذایی حقوقی نداد و اندرز پدر را نشنیده گرفت. سفر اوید به آتن و خاور نزدیک به شهرت او افزود و باعث شد که اشعارش بی هیچ مانعی به چاپ برزند. در اشعار اوید عشق و فریب جایگاه ای دارد، اوید در پنجه و یک سالگی کتاب مزق را نوشت و در همان موقع بود که امپراتور آگوستوس او را به شهر تومی تبعید کرد. اوید ده سال در تبعید به سر برد و سرانجام در همانجا درگذشت. اما بشنوید افسانه دافنه سروده پوبلیوس اوویدیوس ناسو که افثانه رومیه. سال پیش در تصالی پری دریایی بود به نام دافنه دافنه دختر رپنهوس خدای رودخانه ها بود دختری بسیار زیبا مهربان و دوست داشتنی که محبوبیت زیادی بین همه داشت اما مثل همه افسانه ها در زندگی دافنه یک محدودیت وجود داشت اونم این بود که به رغم اینکه دافنه خواستگاران زیادی داشت حاضر نبود ازدواج کنه دفنه! زیبا تر این پریه داریایه این در زیبایی تا شکی نیست دفنه! ولی بهتر نیست ازدباش کنی و مال دنبال سرنوشتی؟ نه! من این زندگی رو دوست دارم رحوب و آزادم در دل این رودخونه مواج هر جا که دلم بخواد میرم هر وقت که دلم بخواد با روای مواج رودخونه آواز میخونم و هر وقتم که دلم خواست ساکت میشم و به صدای با دلت چیکار کار میکنی دافته؟ هر کسی در دلش یه عشق داره که میتونه بهش امید و انگیزه بده چون که عشقی نداری چطوری میتونی با امید و انگیزه زندگی کنی عشق من زندگیه من همین زندگی آزادانیه که به اختیار خودم انتخاب کردم من از زندگی گلهی ندارم که بخوام دنبال عشق باشم با عاشقه چه میکنی تا که میخوای به جواب منفی بدی؟ تا وقتی که زنده یعنی یعنی تو وقت ازدواج نمی همه شما پریان دریایی شاهد خواهید بود که داختنه هنگز از... ازدواج نمیکنه. اینو به همتون چون آمال به رغم اینکه دافنه به همه خواستگارانش جواب منفی میداد اما دو عاشق شیدا داشت یکی لئوکیپوس و دیگری آپولون لوکیپوس اولین کسی بود که عاشق دافنه شد اما نمیدونست چطور باید به دافنه نزدیک بشه چون دافنه قصد ازدواج نداشت و هر جوانی از خودش دور میکرد لئوکیپوس با ترفندهای مختلف سعی کرد به دافنه نزدیک بشه اما هر بار با مانعی برخورد کرد او عاشق دافنه بود و میخواست هر طور شده با او ازدواج کنه تا اینکه یه روز لئوکیپوس تصمیم مهمی گرفت چی شده لئوکیپوس چرا انقدر مضطرب و پریشونی میشته اینم لئوکیپوس نکنه نکنه بازم در خیال ازدواج با دافنه ایم تصمیمی گرفتم که عملی کردنش ساده نیست گلو دیوس. چه تصمیمی؟ من هر طور شده باید خودمون به دافنه برسونم. باید اونو ببینم و ازش خواستگاری کنم <تصمیم> اینکه تصمیم تازه ای نیست دو مدت هاست در فکر ازدواج با دافنه ای فقط قرار بود راهی برای رسیدن به او پیدا کنی او در دریا زندگی میکنه و تو در خشکی برای همینم دافنه به راحتی برات دستی آفدنی میدونم دونم نیست. می دونم به ام. همین دلیلم تصمیم گرفتم جونم و کف دستم بذارم و دل به دریا بزنم پس بگو چه فکری تو سرته؟ حالا که دافنه همه این همو برای دیدنش نقشه براب کرده ام. حالا که این پریه دریایی زیبا تمایوری ام. برای دیدن جوونو نداره و قصد نداره به خواستگاریشون پاسخ مثبت بده ام. نا چرا باید ترفند دیدنش چه ترفندی؟ قصد دارم لباس زنونه بپوشم و به شکل یه پری دریایی به دیدارش برم بعدشم بهش بگم که قصد دارم باشه ازدواج کنم خدای من چی میگی لهو کیپوس؟ همینی که شنیدی؟ چی؟ غیر از این باشه دافنه چطور باید متوجه این همه شهیده در من بشه؟ کلو دیوس؟ تنها راهیه که میتونم به دافنه نزدیک بشه اما اما او دیر یا زود متوجه میشه که فریبش و یه زن وقتی متوجه بشه فریب خورده عشقش به نفرت تبدیل میشه تو که نمیخوای دافنه ازت متنفر بشه، میخوای؟ معلومه که نمیخوام وقتی به دافنه نزدیک شدم کاری میکنم که به من علاقمند بشه وقتی یقین پیدا کردم که اونم از من خوشش اومده پیش از اینکه پی به رازم ببره خودم به نقشم اعتراف میکنم تا دافنه گمان نکنه که من فریبش دادم شدنی نیست شدنی نیست. اینجوری دافنه دست نیافتنی تر میشه من اعتماد کن کلو دیوس دیر یا زود که من در پوشش زنانه دل به دریا میزنم و به دیدار دافنه میرم و از اون خاستگاری میکنم <تصفيق> بعد از اینکه تصمیمش تصمیمشو با کلودیوس در میون میذاره میره که تصمیمشو عملی کنه به همین دلیلم لباس زنانه و خریداری میکنه و اونو میپوشه و به شکل یه پری دریایی در میاد و برای ملاقات با دافنه راهی دریا میشه لوکیپوس وارد دریا میشه اما استراب عجیبی داشت حالا خودش هم به عملی شدن تصمیمی که گرفته بود شک میکنه نمیدونست میتونه تا آخرین لحظه تصمیمش رو عملی کنه یا نه لوکیبوس در دریا به دنبال داف می گشت. اما هنوز به دافنه نرسیده بود که متوجه چند پری دریایی میشه که سر راهش سبز شدن <تصفيق> وای دختره اینجا ببینید مهمون دارید یه پریه دریایی دیگه به این رودخونه اومده <تصفيق> وای چه لباس قشنگی یا پوشیده ببینم اسم چیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ مگه تو پری دریایی نیستی؟ شاید از ما خجالت میکشه <تصفيق> نه ترس. ما پری دریایی هستیم درست مثل تو لکنه تا مالی تا دافنه رو ببینی؟ اگه میخوایی دافنه رو ببینی اول باید با ما آشنا بشی میدونی چرا؟ چون ما یه جورایی نگهبان دافنه ای. ما به دافنه قول دادیم که اجازه ندیم هر کسی به دیدنش بره به ما بگو کی هستی تا اجازه بدیم بری به دیدن دافنه چرا هنوز ساکتی به نفته که حرف بزنه تو ما تو رو پیش دافنه ببری آهای صدای ما رو میشنم یا نه با توم من, من یه پریه دریاییم میخوام دافنه رو ببینم آه. خب ما شرط ملاقات با دافنه رو برات گفتیم منم گفتم کی هستم و اومدم که دافنه رو ببینم پس باید کمکم کنید تا به هدفم برسم و دافنه رو ببینم بله ولی بله نگفتی اسمت بله چی و چی میخواد دافنه رو ببینی من, من وصف دافنه رو از خیر بشنیدم وصف خوبی و زیبایی و مهربونی شون. هم. به همین دلیلم از راه دوری برای دیدن دافنه اومدم لطفا منو ببریم پیش دافنه. نگفتی اسمت چیه؟ من من, من پری دریایی پریه پری دریایی هم که باشه باید اسمی داشته باشی. همه ای ما پری دریایی هستیم، اما هر کدوممون یه اسم داریم. من من من لئو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> لئو دیگه چه اسمیه؟ ببینم نکنه نکنه تو پریه دریاییست نه نه هستم هستم باور کنین من پریه دریاییم ببینین ببینین چطور در آب میکنم آه این که بتونید تو دریا شنا کنید دلیل نمیشه که پری دریایی باشید ماهی و خرچنگ و لات پشتم تو دریا شنا میکنم ولی اونا نمیتونم مثل من حرف بزنن پس من پری دریاییم باور کنین قصد ندارم دفنه رو کنم فقط خوام اونو ببینم و باش حرف بزنم ها ببینم آه. از چشمات پیداست که تو فری دریایی نیستی تو هم مثل خیلی هایی دیگه قصدشی دختر رو فریب بدی درسته؟ نه نه نه نه نه, نه, نه. باور باب کنین فریبی در کار ساکت تو مردی و هیچ مردی هم حق نداره باید دهری مین آب بشه میدی؟ آه. نه نه, نه، دارین اشتباه میکنین من یه پریه دریاییم هر کسی قصد پری به ما رو داشته باشه سزاش مرگی بله که تو با لباس پریه دریا قصد پری به ما رو داشتی شایسته مرگی لوکیپوس نه نه نه نه نه برای مرگ آماده باش حمله نه بله دوستان، اون دو پری دریایی که پی به نقشه لعوکیپوس برده بودن، اونو کشتن چون متوجه شده بودن که لعوکیپوس قصد داره با فریب و نیرنگ به دافنه نزدیک بشه و با اون ازدواج کنه اما با مرگ لعوکیپوس افسانه دافنه تموم نمیشه چون دافنه عاشق دلباخته دیگه ای هم داشت روزها میگذره تا اینکه یک روز دافنه تصمیم میگیره برای گردش و تفریب به دیدن پدرش روپن اوز که خدای رودخانه ها بود میره تا درباره تصمیمش با پدرش صحبت کنه سلام پدر سلام دافنه خیلی وقت بود که ازت خبری نداشتم که خوب شد که امروز به دیدنم اومد دلم براتون تنگ شده بود پدر دل منم تنگ شده بود دکترم چه که بعد از مدت‌ها امروز به دیدنم اومدی ها هم دلم براتون تنگ شده بود هم چند روزیه که تصمیم گرفتم به جنگل برم پدر هم. دلم میخواد زیر درختان فلودون چنار قدم بزنم شبا خوب میدونی که من از بچگی به جنگل علاقه داشتم فکر کردم بهتر قبل از این که به جنگل برم بیا معزتون اجازه بگیرم مم. کاش میدونستی همونقدر که تو به جنگل و قدم زدن زیر درخت پلوت و چنار علاقه داری من علاقه مندم که تو ازنباش کنی دخترم خواهش میکنم پدر درباره یه ازدواج با من حرف نزنیم هر وقت از ازدواج حرفی زدم همینو ازم خواستی دافنه بله پدر همینو ازتون خواستم چون همیشه به شما گفتم که دیلم نمیخواد ازدواج کنم برای چی دافنه آه، چرا یه لحظه فکر نمی کنی که مردی به سن و سال من آرزو داره ازدواج تنها دخترشو ب آرزو داره نواهاشو در آغوش بگیره دخترم. چرا نمیخوای تنها آرزوی پدرتو برافرده کنیم پدر لطفا دیگه از من نخوایی ازدواج کنم من این زندگی رو دوست دارم دلم میخواد مثل آرتمیس همیشه تنها با مجرد باقی بمونم پدر اگه به من علاقه دارین باید اجازه بدین اون جوری زندگی کنم که دلم میخواد بس آرزوهای من چی میشه دفعه؟ شما این که به قیمت تحقق آرزوهاتون من منو ناروحت و قمکین ببینین پدر یعنی تو اینجوری خوشحالی و مشکلی نداری؟ نه پدر نه من این زندگی رو خیلی دوست دارم برای همینم به همه خواستگارانم جواب منفی خیلی میدم بسیار اگه اینجوری شادی و از زندگی لذت میبری من دیگه اصرار ندارم که از زباچ کن <تصفيق> ممنونم پدر حالا حالا چیزی میدین من برای چند روز به جنگل برم باشه دافن برو دختر برو اما خیلی مراقبه خوده وو. مراقبم پدر مراقبم دافنه شاد و سرحال از دوستانش خود میکنه و راهیر جنگل میشه او که بعد از مدتها به آرزوش رسیده بود زیر درختان بلوت میشینه و آواز میخونه زیر درختان چنار راه میره و رویا پردازی میکنه تا اینکه یه روز که در جنگل مشغول قدم زدن بود متوجه میشه مرد جوانی از دور به اون خیره شده دافنه خیلی زود خودش رو از نگاه اون مرد جوان پنهان میکنه اما اما دیگه دیر شده بود چون مرد جوان با دیدن دافنه به اون علاقه مند شده بود اون مرد جوان کسی نبود جز آپولان در تمام عمرم دختری به زیبایی و مهمانی اون ندیدم کلودیوس تو تو اون دختر رو می‌شناسی آره و دختر رپنهوس خدای رودخانه هست اسمش دافنه است همونطور که گفتی او در زیبایی و مهربانی بی نزیره. از هر کدوم از مردان این سرزمین سراغ دافنه رو بگیری همین حرفو رو می همه میگن دافنه دختری بینظیر و از هر نظر برای ازدواج مناسبه اما یادت باشه که ازدواج کردن با دافنه ساده نیست چرا ساده نیست؟ من... از زیبایی و پول و سروت چیزی کم ندارم تو این سرزمین دختران زیادی هستن که دلشون میخواد با من ازدواج کنن موضوع فقط پول و زیبایی نیست پیش از تو جوانان زیادی به خواستگاری دافنه رفتن که پول هم داشتن زیبایی هم داشتن اما دافنه حاضر نشد با هیچ کدومشون ازدفاج کنه برای چی؟ مگه دافنه از همسر آیندهش چی میخواد؟ نمیدونم آفالان نمیدونم. ولی از خیلی شنیدم که دافنه به جوانی ساده علاقه منده، و چون نمیتونه با اون ازدواج کنه به همین دلیل دست رد به سیمه ای خواستگاراش میزنه ولی من مثل بقیه نیستم من پیش دافنه میرم و به اون میگم که قصد دارم باهاش ازدواج کنم یعنی میخوای به زور دافنه رو وادار کنی با تو ازدواج کنه؟ هر مردی در زندگی سیاست و تدبیر خاص خودشو داره من هم از راهی که خودم بلدم وارد میشم و از دافنه خواستگاری میکنم به زودی در مراسم ازدواج من و دافنه شرکت میکنید پلو <تصفيق> که شیفته دافنه شده بود تصمیم میگیره هر طور شده از دافنه خاستگاری کنه به همین دلیلم تمام جنگل و زیر پا میذاره تا بتونه یه بار دیگه دافنه رو ببینه به همه جاهایی که ممکن دافنه رفته باشه سر میزنه اما موفق نمیشه دافنه رو ببینه با این حال او از گشتن ناامید نمیشه و همچنان جنگل رو برای پیدا کردن دافنه زیر پا میذاره تا اینکه یه روز که همراه کلودیوس در جنگل به دنبال دافنه نمیگشت آپولون چشمش به دافنه می خودش کلودیوس خادشه, خادشه. خو. اون دافنه هست کجاست دافنه هم میبینیش؟ زیر اون درخت بلوط بلند تیرو کمان در دستش داره و سرگرمشه آراره دیدمش من باحت برم باش هر بزنه باپنان به عنوان یه دوست ازت میخوام که جلوتر نری دافنه به تو جواب مثبت نمیده من بایش شانس خودمو امتحان تغانی کنم ولی ممکنه آزارده بشی دوست من اگه شانس خودمو امتحان نکنم بیشتر آزارده میشم باشه مثل اینکه تو دستم تو گرفتی پس یه بار دیگه حرفایی رو که میخوای به دافنه بزنی مرور کن من؟ به اون میگم از وقتی که دیدمش بهش علاقه من شدم به اون میگم که همیشه در زندگی بهش وفا دارم و قلب من فقط جای اونه بهش میگم که قول میدم خوشبختش کنم حتی اگه این خوشبختی به قیمت جان خودم تموم بشه کاش میتونستم تا رو از این من منصرف کنم با این همه حرف و سخن عاشقانه دل حرم شروقی دست خیر میشه. بله ولی دافنه با همه ی دخترانی که دیدم فرق میکنه من که بارها از داستان دوستم لوکیپوس برات گفتم آه. گفتم که چطور اون دوپری دریای دوستم رو کشتن چون میدونستن که دافنه دلش نمیخواد با هیچ مردی ازدباشت من هر مردی نیستم من آپالونم خدای روشنایی و هنر و موسیقی ام. آرزوی هر دختریه که با مردی قدرتمند و زیبا مثل من ازدواج کنه بسیار خوب بسیار خوب این زندگی تو منم عنوان یه دوست برات آرزوی محفظیت میکنم دفنه داره به طرف انتهای جنگل میره آهسته پشت سرش میرم تا در موقعیت مناسب به اون رستیک بشم از خودت مراقبت کن مم. آپولون در جنگل به راه افتاد آپولون تصمیم گرفته بود هر طور شده با دافنه حرف بزنه و به اون بگی که قصد داره باهاش ازدواج کنه در حالی که دافنه تیر و کمان و در آورده بود تا آهوی و شکار کنه آپولون به طرفش میره تا با اون حرف بزنه اما دافنه با دیدن آپولان وحشت میکنه و پا به فرار میذاره تو کی هستی؟ شی میخوای؟ سهب کنی، فانو، سهب کنی من قصد ندارم شما را اذیت کنم فقط بخوام باهات تو حرف بزنم من، من با شما حرفی ندارم از من دور بشی من آپولونم باید با شما صحبت کنم خواهش میکنم بیستین و به حرفم گوش بدین من نمیخوام با شما حرف بزنم نجفان منو تنها بذارین کاری به من ندشته باشین من مدت هاست منتظرم شما رو ببینم خواهش میکنم اجازه بدین با حرف بزنم نه نه برگردین آه. برگردین برگردین گذشت. اما آپولون نه تنها نتونست دافنه رو فراموش کنه بلکه علاقش به او بیشتر شد او روزها و شبها به دنبال راهی میگشت تا بتونه دافنه رو پیدا کنه و با اون حرف بزنه اما هرچه میگشت امیدش برای پیدا کردن دافنه کمتر میشد این همه گشتن و به مراد نرسیدن آپولونو کلافه کرده بود وقتی میبینم اینجور مقبون ما تمزد زانه قم به بقل گرفتی از خودم بدم میاد اپولون فکر میکنم دلیل این همه دلتنگی و ناراحتی منم اه. تو به من هشدار داده بودی کلودیوس. هشدار دادی که دنبال دافنه نرم هشدار دادی که او به سادگی تسلیم میخواسته من نمیشه هشدار دادی که او با تمام دخترانی که تا به حال دیدم فرق داره با این حال من بودم که اصرار داشتم دافنه رو ببینم فکر نمی کنی وقتش رسیده که اونا فراموش کنی؟ نه فراموش کردن دافنه ساده نیست و از من بر نمیاد شایده که تو هم به اندازه من به اون علاقه من بودی همینقدر برای ازدواج با دافنه اصرار داشتی ممکنه ولی به نظر من باید به آقابت کارم فکر کنی وقتی میدونی این همه اصرار به نتیجه نمیرسه؟ بهتر نیست وقت تو تلف نکنی و اونو از یاد ببری نه خاصیت عشق همینه اصرار کردن به منشوق و رو برگردوندن منشوق عشق. من تو جایی که امکان داره میرم و میگردم و دافنه رو پیدا میکنم اون باید به حرفام گوش بده حتی اگه نخواد با من ازدواج ولی ممکنه در این راه جونتو از دست بدی دافنه زن قدرتمندیه هیچ بعید نیست از قدرتش استفاده کنه تو رو از بین ببره میدونم همه برام مهم نیست اگه رسیدن به دافنه به قیمت جونم هم تموم بشه من حاضرم جونمو قربانی کنم زردار نمیارم اگه قرار بمیری چه ضروریتی داره به دافنه برسی؟ تو هاشق نشدی حاشق نشدی که بفهمی چقدر سخت میگذره وقتی بدونی اونی که دوستش داری همین نزدیکیه ولی نمیتونی حتی ببینیش که بفهمی حاضری تمام هست و نیست تو بدی بهش برس ممکن حق با تو باشه اپالان شاید اگر لیوکیپوس بیچاره یه نقشه بهتری برای رسیدن به دافنه میکشید موفق میشد بهش برسه هم. یه جای کار اشکال داره چه اشکالی؟ نمیدونم ولی هر چی فکر میکنم میبینم که دلیلی داره که دافنه حاضر نیست حتی حرفای منو بشنوه چه دلیلی؟ گفتم که نمیدونم من انقدر فکر میکنم تا پی به این راز ببرم و بفهمم که چرا دافنه حاضر نیست حتی به من نگاه کنه <تصفيق> ساعت فکر کردن اپولون همه اون چه رو در اولین و دومین دیدارش با دافنه گذشته بود بررسی کرد میخواست بدونه کجایی کار رو اشتباه کرده بود که دافنه رو فراری داده یا اینکه چه دلیلی باعث دوری دافنه از اون شده بود ناگهان آپولون متوجه شد اشکال کارش در دیدار با دافنه کجاست متوجه شدم کلودیوس؟ متوجه شدم, متوجه, شدم. متوجه چی شدی اپنان؟ فهمیدم چرا دافنه از من فراریه. فهمیدم ها. فهمیدم چرا دلش نمیخواد منو ببینه خب چه دلیلی داره این کار؟ دلیلش اینه که دافنه فکر میکنه من یه رعیت روسازادم. سازادم شاید،, شاید اگه بدون من کم اینقدر از من فرادی نباشه. نمیدونم چی بگم اپنان؟ شاید حق با تو باشه شایدم حق ناه با... دیوز دلیلش همینه شاید اگه لئوکیبوزم خودشو به دافنه معرفی میکرد دافنه برای همسندن با اون رام میشد آره آره خودشه خودشه ولی تو میخوای دافنه رو کجا پیدا کنی مدت هاست که ما تو جنگلی ما از اون خبری نیست از همین لحظه تمام وجودم چشم میشه و وجب به وجب این جنگل رو زیر پا میذارم تا دافنه رو پیدا کنم و پیداش می‌کنم مطمئن باش اون یه پری دریا آپولون <متصال> ممکنه رفته باشه دریا در اون صورت تو نمیتونی اونو پیدا کنی نه داخته هنوز جنگله دلم میگه که اون همین نزیکی و منم به زودی میبینمش بریم رفیق بریم که روزهای خوشی در انتظارمه هی برایگون از اون روز به بعد آپولون و کلودیوس با دقت جنگل رو میگشتن تا بتونن دافنه رو پیدا کنن اما موفق نشدند. تا اینکه یه روز درست روز در لحظه ای که دافنه داشت به طرف دریا میرفت آپولون اون رو میبینه و با عجله به دنبال اون به راه میفته اون حالا تصمیم گرفته بود هر طور شده به دافنه بگی کیه و چی تو سرش میگذره دافنه, دافنه. واسطه برو خواهش برو. می کنم خواهش می کنم اجازه بدیم با شما صحبت کنم صد کنی صد صحبت صحبت صحبت کنید صحبتی ندارم خوش کن دافنه من یه ریگت روس سازاده نیستم من آپولونم خدای روشنایی و هنر و موسیقی صبر کن صبر کن باید با شما صحبت کنم برای من مهم نیست که تو کی هستی فقط اسم روح چرا باید از تو دور بشم تو باید به حرفای من گوش بدی سب کن سب کن آپولون مدت زیادی به دنبال دافنه میدوه اما موفق نمیشه به دافنه برسه چون دافنه وحشت زده و حیران از اون دور میشه دافنه تصمیم گرفته بود به هیچ عنوان اجازه نده آپولون بهش نزدیک بشه اما بر اثر دویدن زیاد خسته میشه و از نفس می‌افته. دافنه که دیگه رمقی نداشت تصمیم میگیره از پدرش روپن اوز که خدای روتخانه ها بود کمک بگیره نه نه به تازاری کن، پدر. در همون حالی که میدوید و از پدرش کمک میخواست کرخی و سستی زیادی و در پاهاش احساس میکنه. برای یه لحظه حس میکنه پاهاش به زمین میخکوب شده و توانی برای قدم از قدم برداشتن نداره در همین موقع بادی میوزه و پوستی مثل پوست درخت تمام جسم دافنه رو دربر میگیره و مدتی بعد هم دافنه به یه درخت تبدیل میشه آپولان از دیدن اون چیزی که به چشم دیده بود وحشت میکنه نه, نه. تو، تو کجایی دفنه، ای این واقعیت نداره. دا تو کجایی دافنه؟ خواهش میکنم جواب بده نه، نه، نه، این پوسه چی دوره تو تنیده شده نه، نه، دفنه، دفنه کجایی دافنه؟ بیا بیرون، بیا بیرون از این پوسه درخت بیا بیرون چی شده، <تصفيق> آف چی شده دفنه کجاست دفنه درخت چیه چا این شکلیه ای ای دفنه هست دفنه هست دفنه چی دانی میگه اپلان ب... ب... باور کنی دفنه هست خودم دیدم که باد وزید و پوسی از جنس درخت دور دفنه تنیده شد خدای من ستوام هم کنه میبینی که به یه درخت تبدیل شده خدایم خدایی که تو تو رو از دست دادم دفنه چرا اجازه ندادی با تو حرف بزنم؟ چرا بیا بریم بیا بریم من نمیتونم دفنه رو تنها بذارم بسیار خوب بسیار خوب از امروز به بعد این درخت درخت منه درختی که همراهان و دوستان من میتونن با برگاشت پیشونشون رو پاک کنن خوبه اپولان خوبه بیا بریم پاک امروز به بعد این درخت در تمامی پیروزی های من و دوستان من شریکه از امروز من و این درخت با هم داستان سرایی میکنیم و همراه و همراز هم خواهیم از امروز منو این درخت میشیم دو یار از هم جدا نشدنیم به این ترتیب با درخ شدن دافنه، افثانه دافنه هم به پایان میرسه. افثانه سروده پوبلیوس اویدیوس او ناسو، شاعر رومی که درسی از عشق و فداکاری و وفاداری داره. دوستان و همراهان عزیز رادیو نمایش شما میتونین با تلفن گویای 162 تماس بگیرین و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بذارین. سامانه پیامکی رادیو نمایش 301075 لطفاً به ما پیامک بزنین و نظر خودتون رو در مورد افسون افسانه بگین. نشانی ما رادیو IR. دافنه. سروده پوبلیوس اوویدیوس نسو تنظیم برای رادیو سهیلا خوددادی راوی محروخ افضلی بازیگران راضیه مومیوند منا صفی سیما خوشچشم کامیار محبی امین بختیاری محمد یگانه حمید یاستانی <موسیقی> کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور نرگس موساپور صدا بردار مجید آینه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی اند افسانه زندگیتون دلنشین و مانا تا افزانه دیگر بطروت